انشاء سلام به شرکت ایلا تربیت صدای استاد رحمة الله يا الفنان علي ابو عبد المؤيد و عبد الله الشار و الفوار عزاد سلاذ ما الخضر أمس و اول امر نقل نام له استاد جمله اینا بعد حقيقة بيان المقدمات تواصل الأستاذ إلى هذا النتيجة أنّ في المعاملات الموجود في المعاملات اعتبارا من الأمرين على اعتبار نسّن الإنسان في نفسه يعتبر شيئاً، ولكن رأى هذا الاعتبار نسّن، والمنقول المورّع والمورّع هو النهي يعني ال... والقانون الخطب القانوني. یکون بمجموع به مجموع و فلو لم ترسی و ادارد رو داخلی مثل احلی اعتبار خانی کما هم نبیاد تر و نبیاد و و امر اعتباری به الامر از ابراز الامر اعتباری و یعنی اعتبار نفسانی افراد حاضر اعتبار حاضر من و من جهت اخران الله اندر اعتبار في فی نه. هو اعتبار محرومیت المخلف الشارع اللولا یعتبر محرومیت المخلف علی شب خیلی خیلی که آبیه هایی و به رقابت این وقت لاندال استاد به حضرت سورا نکنون سالا را بی بخت الامر بی اردال بخت نمیم عشر را انم صحیب انهو لابد دن آمنه هرخای تحلیلین تحلیلی ولی استاد یعنی فکرال داده او بودم یک به هم اما تحبیل زدوی امده بود فمفاقل اعتبار و محرومی از اشاره اشکار یا اندر مکلپ محروم و اعتبار و سم اعتبار لاغو دهن یو برده و خارجن حتی اکن اعتبار تحلیل رفضی در استاد رحمه الله یرجه اله انه حیرتنن بیست زجرن کماثی منعن کماثی، حرمتن کماثال مشبور نسبت زجریه کماثی، کل داره, داره فقط محرومیت المکلف، نه سوق الاغدا، اضافان المکلف، المكلف به مصداقا لعبدیه یخم و معلیه الاتیان الحرم از ذر شما شابه داردتون تزد فاقا اندر استاد لا تفعل لا تقوم لا تفعل با تحقیل هاره نقصه به اصطلاح اعتبار و محرومی در مکلم و اعتبار که قوانین الانسان یا انتظر همین حضا عنوان حرمه لا از حرمت و و من من ناحیق تحلیل و ما جایی بر کلمان من از و سببیه و تصویر این غیر سود از ایش في مجال اقوال و ماجهات، ها عنابی، سباب تصویر، مفرد بگون، سباب و نه ما بعد ماجهات تقریباً به شکل موسط، خلصت فی کلمات فخر محققین، فی چرد علم. اول کتا باردی که خیلی اصطحان ها رس کن، سباب و یعنی مصطلحات اول کلمه سحر و محققی و من بعدی جمعه من القرآن بشو علاق السلاح اراده بستاد، این استاد ها را انه یبنیم انه ها را اصطلاح خیلو ما عندنا سببیه و سببیه ما هیدنان شرصان و مشکول حتی که مصطبه هی خیلطه دید حسولا حدیث المعاملات اشکره بی ایسانت الوصولین مثلاً دخول الوحش شرخ لوجود در وجود و ان نبقوع العمر سببون لوجود سببی و مسببانات شرط نهار شرط و بدایت و لاغونات سببون اصلا حدیث سببی و مسببی غیر صحیح. الموجود فقط الاعتبار و ابراض الاعتبار در اعتبار و ابراض دیزی و قادمیه تو آن شیئر لگی اعتباره و یحتاج الان امغاق اغدایی و امغاق شرعیی یعنی داود در یکونه هایل این ویب اعتبار هم من امری اعتباری لاغایل علاقات این نقطه فی ما رحمتی لا سببیت فیلتین لا, لا, لا و امور و لا, لا لها إلا أما صدر لها مصدر صدرها صدرها لیت تصفیل از از سبب است لیجاد ملک و منی باونده ونا به خیلی خونا آردن لیجاد ملکم و منی نایی جعل دل و دل آرد لا آره و تأثیر الاسطاد على نسل السبریت و تأثیر المصدریت بالنسبه ادام ها المعاملات و به تغییره تباید انده المعاملات الموجود في المعاملات اولاً الان اعتبار النفسانی و هذا في همه اعتبار محرومیه، شعر محرومیه در مکلم خوبه، اعتبار محرومیه تفل مکلم آقا، رو شید تا بعد، نهده که الله و عرب و قبله از کنه هاها که بی که فقط چه رو دیگه های دقوان شد من استاد، به تعبیر خود نه همون آمن ناکه زنش، به تعبیر کنم، انم مفاده نه اعتبار المحرومیه هل واقعا فقط اعتبار المحرومیه اما مفاده سیغه اضافه لازاله المحرومیه اعتباریه یعنی، کان المناصده استاد امیات هم ده هذه محرومی است حدود مبضور محرومیه بالاعتواری اولای هست. یعنی، ه charge و اعتبار نمدون حریف نفس المحرومی، اولای محرومی حاسودکونه اعتبار هست. قر مناسب khan چند محهد شد. همیندور اولاً ایلن محرومیت الحقیریه ثانیت ایلن محرومیت اعتباریه و ایلن محرومیت اعتباریه چه از مقام محرومیت الحقیریه و چه از پرتبال نه را خود نه؟ دو حتی لا یفتحید با یه سود این محرومیت خخرا یکون نکو دا سبسه الباق آگه محرومی اکتر وحید الله لازی باب العبادر و لازی اول موادی لمیست اعتبار المحرومی هو هل مجرد رو اعتباری فقط به حیث به محرومی واقعیتون لیکن دیگهال المحرومی در حسابات منافسه در معرض است المحروميه اعتبار المحرومی. فاذا صارت المحروميه اعتبارية فلا بد ان تثبت يكون من محروم من ذلك الشيء فكيس اذا صار محروم واقع يا ترى سواليات اعتبارا, اعتبارا مثلا از آخار از نام اخفت نورجل و شدت نایده ای رو رجلی از خب، هنا از سه دواه زجر نورجل، منر نورجل، منر قیام، مثل الباب ها دا بله ها خاله بله ها خاله از از بقیه یعنی بابو مفدودن یعنی و رضا به هذه ها قلنا این نقطه قدما انه المحروبية او المحروبية من به تحبیر به ایت مار محرومیه او الواقع هم من حبوم در حرکه و بیان انه ان الواقع اصلا لا حفظ لاید چه حفظ الواقع اون نمفاضه نشده و امران زد و اعدام رو و عدم روید معنا به اعتبار محرومیه اعتبار محرومیه مندون از خب یعنی از محرومیه اعتباری و من جهت آبا جهت تحصیلی و اما من جهت اخراه لنفسی می دستودی این بعد خب این تو به نشویلنگن لی تفعیل اعتبار نفستانی و ابراد روی نه خب آمنا سلمان اعتبار جبرم آمنا ليس امر الواقعیم موجودا فی باعه اعتبار لیسه که در اعتبار حتی به قادران آتا فی نفسیی که بين و اعتباری و به قادران فی فشیل زدین از این طبولون اعتباریون اعتبار ملکیه آقی و نفس میخواد ملکیه به کتابی حضرت شنو لم یکون تا جهرم آمه لم يكن كذلك عندنا قلنا أن الإنسان إذا لم يذكر الاعتبار يعمل على المعنى الحقيقي جائلا في ربعه إذا قال أصلي صلاة الغرورة للناس في الصلاة الليل هل, هل يحتاج لأن أقول أصلي صلاة الليل عن نفسي؟ كما يقول أصلي صلاة الليل عن والدي قل بلنا بل عن لا يحتاج لكي قل بمجرد أن أقول أصلي من نفسي صلاة تكون لغالبیی یحتاجی لاکنید به مجرد انمال انسان العمل العمل یخسر دار لا یحتاجی نقول به نفسی اما ازا عرام در انیجه علمون بغیره حاضر اعتبار هست خلاهون یکون واقعی هست واقعی اعتبار هست به و یعنجت واقعاً جبیه خب اضافران ما اعتبار و ها را. سیدن رسان سیدن و گولن که واقع بعد اعتباری حقوق نفس و ابرادی تحقق و آل اعتبار خب ما حد بر ماهن ها به سببی اعتباری هایی و آنها منون خب تؤمنون، برنه بود لم یکن فکان لم یکن و اضافتان سابقاً با رفته تو موجود برن بس به تعبیر برده هم. اصلا من تحصیل حاصل لبنه آلا حاصل رو بلویجان ولی من تحصیل حاصل برنه لن تحصیل حاصل برنه هشه موجود رو تحصیل حاصل لیکن هذا اشياء حالا لنه هذا و اعتبارا و قنونجی حقوقت الواقع فا انتون چخلون لیسه إلا لإعتبار نفسانی به نه خاطر، إلا اعتبار نفسانی و ابرازی رو هذا یعنی لم یکن فسار لم یکن موجودن فسار کسی که اندم یک کن موجودند و سا ای توانات سببیتون به ای توانات مصدفیتون مرادون یا سببیه ها در یعنی علمه میکیتون زید نمت کن کتابی تا حسالت یعنی اعتبار آفی حفق نفس و حضرت دارون به حیث لما کارت مکی حجوده فرس بگیرونم جرید و فرسنا مرادمون حصول سببیه ای ایتی زعای که احکام سببیه بیردی رو احکام شد به اون آن <سؤال> مرادشون، و اما مراد صبح ها اما مراد صبح ها فی حاد المجار فی باقی نحیت المعاملات اندن نحیت علم نصدر مصدر ها و هوا از منون سوا اون عربیه اون فلقل قانونیه اون فقر روایات هم ان ان النبي يتعلق بعمل مختلف ما يسره المكلف سواء اعتباري واخرى ان النبي يتعلق بالنسق الضروري الميل يعني هم لاحظوا الفقهاء والاصوليون لاحظوا هذه النقطه ان النبي قد يتعلق بالسبب الذي فعل المكلف يتعلق و اگر تعلق به مبرد او به اعتبار او به ملکیه او به عربت نکار عراض و حلیه و هر قنات افلا من امناهی اللغویه سایه من قانونیه لعنهات هر قنات شرحنا انها لهو جهت لغویه جهت قانونیه خل من از ناحی القانونی یه فرقون بین نحی از نحی لبیت علق و بعمل شخص و به اعتباری و نحی لبیت علق دل معتبر و دل معتبره خارجه خل بینم هم ها فرقون هم دار هم کلاه ما اعتبار من واضع واحد فر روایات به نسام و فهم العرفی یساید و علاها به این نقصه و هیرم نبو از یونح الانسان ان عملی یهول لا توجه یعنی مثل اعتبار لگه روی بود و اداره او لحوان او تجارتن انتب دور الیداره. مراد من التجاره یعنی به عباره اخران نمشه مقلب کلامو مثلا، نعم نبی عن هم بین الگرد، حاضر شیوان، نعم نبی عن هم بین الوقت یعنی ملکیه انتقال بود، زده علی خلاق دین الرسولیم، یه حل قانونیم و اعتباریم، دین محلیم، خلقون املاق علاقه، قلتها در خلاق اجمال هست، که به الان نتکلم من الاسطاد نرجه الا کلام استاد. خب استاد بعد از نقلم هم موجود في نوز المعامل به اصطلاح اتضاع انتی صفحه اربع و اذا حللنا باقع المعاملات لم ندستیوار فعمره الاعتبار قائم به المعتبر بالمباشره في الخارج في باب المعاملات ملک که اعتبار اعتبارو نمیشه به موجب معاملات قول و قرر نحوی رو علی فمعاملات اساساً مرکب بنهاغی در هرگه با عندهم یعنی ال اعتبار نفسانی و ادراکی فی خارج هذا به نوع المعامله فبعض سنتی جمله عبارات معاملات به شرط هروانه مرکب است من هر اعتباری نفسانی واهرم مراده به به عشقاله ها یعنی تو آمکان عقدن اون یخا انداره بزید پس این یخا فعلا بله رو زوجته هو بریده هم این محصول از رو زوج به و یمر زوجه به اقلاق زوجه خارش به ممر زمان لیس سببون ولامو سببون سیده رو جلس سببون به ما بو علیه امروی اعتباری لیسه بود معنی امروی اعتبار نوفی و اعتبار موجود موف الواقع وهاد انسان به اعتباری و عبرال دیگه اوجه نمون خلید آقومت علی از خببی از و اعتباری حالا قبض الله نفسه من جانب آخر این المعاملات و عناوین از خاطر کلبه یا اجاره و نکاح سر و مشابه داره از او خیدن مفروضات الوجود یعنی به عبارت مخران حالا قبض المعاملات به نفسه از حکم شرعی من قبیل موضوع لا من قبیل متعلم لعنه او اوفو به امور بدلت قال ان نکاح و صلح ها معنا نکاح و سنتی؟ معنا داره علاوه اون که خارجه کن و نکاحا رو الله موضوع لازم قدیل متعذن فرساد نهودن قدیل از قبل به از, از, از به جلو موضوع احلالا هزه البيت موضوعا لا متعلقا در نص ها محبوب تون که موضوع انضاع اغلا اغلا هم ها کدا بیان و علا هادا که به طبیعتن حال تصویقه بخلیتون امضای شرعی علا فلیداره محامنه تخدم ها به کلام رو استاد و تخدمت و تحققها قل خارج فمرجه هم به تعالی احلالالله و مثلا الى قولنا تداو جز شیعون قل خارج و صدر به اون به اون فهو مقضا شرعند ولداد سابقه این سحسان فسا این سحسان حقیق حقیق سلس قلنا فی ما تقدر انه سحس دل محاملات به خلاف و مثلا شرعند ای اوزنید اولید <سؤال> بعد هم آده بیان چود از هستی بعد تکرات وقت تحت سالم مجموع ما موجود فی ما آقا یه می بعد مقدمات یک خودی چیز خود به از وقت الگی <سؤال> یعنی yani خلاص سحاب الزهر هرادر استاد هم یبینه به درسته انا نهی ازا تعلمه به معامله به ای شیعنه تعلمه هم هو یعنی ازا سران ناقال لا تبق انا لا تنکه لا تنکه لا تنکه همانه که نهی یا قول الاسطار الاشیاء المتطورتی ما نخلصی هر بعثون اعتبار القائم بالنفس اولا ثانیا ابراز و خارج مثلا یعطب مثلا هر زوج اولا في نفس ثانیا و قدر في کلام الاسطار هایی نقطة قانونی از یعنی از آن بایداتن که خلالته است، که ام نبو حاضر طارفا این ام ندار امن الارض المتصال به این مراحل نفسانی اعتبار و نفسده و یه و یه اعتبار اعتبار و نفسده در اعتبار حالا انکه قال احسن به نفسی قالت عزیزم سالتا این به ناظر اغلا انی اتا و ما ها در عیس المرک معاملت ان انه حسن به زوجیه بینام امضاق الاغلا ارابه امضاق اونو محتمل این را ها اینها خطرنازه نه خالد هستند الله سو صلی نه یه هم سوی نه یه هم رهبر نه ما نکن ما این نهیم نه متعالهم به از تفسیر آدم آدم مثلاً النا تعلق به اعتبار انتظار عتبر فیلس به ابراز یعنی لازم از که عمده بل امراه الاغلائی مرانت عمده لما لا تبه امراه یعنی عمده مغلاء لا يعتبر بها رضیه کما يكون النبو بلحاظ لا اعتبار الاغلائی نکره احتمالی آخره نیوست او به بعد از که نبود این با مراقب زنی که شما فرمویی چه اصبادی بده؟ که نه در مراقب هم این مرمانیه چون درباب عبادات نیست با و معاملات به هم ناصرش که اینجا خود تره هم افرار همیجا میدن درباب عباداتون جهنه هستن که پرسی چیکاره هست؟ یعنی چه مقام انتصال می‌خورد خیلی فرستی دارد مقام هست این مراقب ایشون به نظر ایشون ایشون برای معامل ای این صورت سنبت بیان انم نه یا تعلم رو به احتمال اول انم نه هو تعلق <تصفيق> به انغاه شرقی قاله اول. امن نهی الی املاع اداکان الی احتمال های احتمالی احتمالی اولا محنه لگه ودایت امن املاع شرعی سیر اختياری در شارع لا به حفظتی مسا آملا به اعتباری مسا آملا شارع لايه امر اذا من شروط الجمل لم يثور ان لايه ثور لا ان هو ينها من قبل داخلي اذا كان في مو انه ينها الشارع مثلا في مثل بيع الكذب بيع الخنزير خام بيع ربوي في هذه الامور و عدم اعتباره از نمکی یا سفیه ها منجد وجود مستر ملزمه که تلکل معاملات سه امه ها لا انها ها اونجه و حال نهیه هم حالا ایاماله ادیو تسازن نهی دل انوار شعری لان نشاره اداره بعد ته مالیت، به چیشی هم؟ بعدی نایت بارد. لا اگه مالیت اندر مرجعه الان به کعن الائیوز مرجعه الان یعنی مرجعه الان یعنی همه لامل مرکیه قاله الله نفسه لا مهنه محسد قره الان لا رسله به نایت الاملاع به قال اناد مع نح شار محاضل معاملات به ناحیه ده و کو نن ها این یعنی هم متوجه المام لكن لودن و به الواام بود مفااضها نح شاه الوا شارت نفت قال ترهم فاتور، و داره که هذا النهي ليس نهيًا تكليفيًا ليُقال إن غير معهود. يعني يقال إن النهي عن فعل غير لا عن فعل غير معهود، فمرجو لعدم إرها. لا، هذا لا يقال، لأن في ما نحن فيه النهي الإرشادي، وفي تأويل ذي رحمه الله أن النهي الإرشادي ماذا؟ لحن الإخبارية إن هذا حلو ارشاديا ان رو حاضرا خيال شد الى عدم امراض اشكار مثل تنوهايد يعني اشكار علمای پولدارن که معنا انه اشكار لم يوم خير المعاملات فكأن المولى اخبر هر قصود و فسادهای معاملات و عدم ایجادها نه يوم چند معاملات تكون محرم شده شرعاً هلو آیا خالب وقد عرفت ان المعاملات اثامه للافعال صادر عن آهاد الناس خلا ما من تعلق الحرمت بها فن نتیجهی انه لا معنا لتعلق نه بالملکی شرعی مثل ماه معنا تعلق نه بالملکی شرعی و کبر لیث مناک معنی به تحلق به انواع مقالایی من حاد و الحقالای شیمال واس فتباییم الامر و از دارست منتظر الامر سانی تعذق نمی به انواع شرقی الامر سانی تعذق به انواع مقالایی و اما از سادست و هو تحرم آما نهید به اعتبار النفسانی مثل یک خود لا تبع یعنی ی زنگت یعنی لا نهیان نفس الى اعتبار و نفسی نهیان الى اعتبار لنه اعتبار فعلا اختیاری رو شخص و مال یک نجل نفسه زوجه یه نفسه او حد اختیاری الا اختیار رو یک از نفس رو با این سال بحث فرخواد از مواز موارد ماشا به داری خیلیم که همیت تحلقه نه این خواهد یعنی ام نه یه مثلا ما و یاده ام نه یا نه از نه یا اصلاح اصلاح لیمتون اراد بیاره این اتباه ام نه یا اصلاح و به نظر اضافهانا معنمون تخصیل لیکن عملا ناسم یا راجعون ولن یا این جنرل مراجعه همین رسولت اصحاده هو عمل و حرام من لا یعنی صدور و فتواه فیکر مقامات و حسن معاملات لا مالی من محمد آزب مالی سنده یعنی اراکان لیت لکه ام تعتدارو مل ده شخص را اعتبار و افثانی، فهل وقت یعنی اداران هماره کتاب لیت لکه شویدو هم ده چکل کتاب، ملک کتاب تعتبر کتاب ملکن لکه ای دبار یعنی هماره اعتبار افاد مستاد نرحاضا معبول علاوه نهید اعتبار به اطلاع شئیل اخطیاریان در انسان امرو نعبول رو در اشکار بگید نا نشکروفید لیکن ها در مطلب نیست ها حاملت هم ولی ذا قال لما عرشت من ان المعاملات من العبود من و الیقاعات اثامن در مرکب من هم من داره که الامر اعتباری به ابراز بگید في الخارج به موجب ما فلا تصدق علنی اعتبار شخصی فخر و لا خارجی قرار که و الا حاضر ما يتعلق به نه به ما و ما معاملات هم نیست معنی آنها صحابه نسور قابل یک در بیفاری رسول و